اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم من کذب علی الله وکذب بالصدق اذ جاءه الیس في جهنم مثوا للكافرین پس چه کسی تر است از کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را چون به سراغ او آمد تکذیب کند آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ و کسی که سخن راست را آورد و آن را تصدیق کرد اینانند که پرهیزگارانند لهم ما یشاؤن عند ربهم ذالک جزاؤ المحسنین برایشان هرچه بخواهند نزد پروردگارشان آماده است این پاداش نیکوکاران است <تصفيق> ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون تا خداوند بدترین اعمالي را که مرتکب شده اند از آنها دور کناد و انها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد الیس الله بكاف عبده و يخوفونك بالذین من دونه ومن يضلل <تصال> الله فما له منها آیه خداوند برای بنده اش کافی نیست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 قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علیهتو و اگر از آنها بپرسید چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است مسلما گویند خدا بگو آیا دیدید آنچه را که به جای خداوند می خانید. اگر خداوند زیانی برای من بخواهد؟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 في ذلك لقوم خداوند جانها را به هنگام مرگشان قبض می کند و نیز جان آنها که در خواب خود نمرده قبض می کند آنگاه جان کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه میدارد. جان دیگری را تا مدتی معین باز پس می فرستد بیگمان در این امر نشانه های است برای گروهی که اندیشه میکنند. کنند ام من دون الله شفعاء قل اولو کانو لا یملکون شیئن ولا یعقلون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 بگو تمام شفاعت از آن خداست فرمان روائی آسمانها و زمین از آن اوست سپس همگی به سوی او باز گردانده می شوید و اذا الله وحدهش مأزد قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِ کَفِی مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ بگو پروردگارا ای آفریننده آسمانها و زمین دانای نحن و آشگار تو در میان بندگانت در آنچ اختلاف می کردند داوری خواهی کرد ولو أن ان لیلذین ظلمو ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدو به من سوء العذاب يوم القیامه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و اگر تمام آنچه که در روی زمین است و همانند آن همراهش از آن کسانی باشد که ستم کردند یقینا همه را به خاطر سختی عذاب روز قیامت برای رهایی خود از عذاب فدا کنند و برای آنها از سوی خداوند چیزهایی آشكار میشود كه هرگز گمان نمیکردند وبدا لهم سیئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون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 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَاءِ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ پس بدیهای آنچه می کردند به آنها رسید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 انگاه از سوی هیچ کس یاری نشوید و اتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب من قبل این یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون و از نیکو ترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که ناگهان عذاب به سراغ شما آید در حالی که شما از آن بیخبرید این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 و بیگمان از مسخره کنندگان آین او بودم او تقول لو ان الله هدانی لكنت من المتقین <تصفحور> <تصفحور> <تصفحور> یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد یقینا از پرهیزگاران بودم. او تقول حین تر العذاب لو انلی کرتا فأكون من المحسنین یا هنگامی که عذاب را می بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز میگشتم تا از نیکوکاران کاران می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 ويوم القیامة تری الذین كذبوا على الله وجوههم مسودة ألیس فی جهنم مثوا للمتكبرین و روز قیامت كسانی را که بر خدا دروغ بستهاند میبینی که چهرههایشان سیاه شده است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 و خداوند کسانی را که پرخیز گاری کردند با رستگاریشان نجات میدهد. دهد. نرنجی به آنها رسد و نه آنها اندوه گین شوند. الله خالق كل شیء و هو كل وكیل. خداوند آفریدگار همه چیز است، و او بر همه چیز نگهبان است. له مقاول دو السماوات والارض والذین كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. کلید های آسمانها و زمین از آن اوست.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 وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ و به بتو به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وعی شد که اگر شرکاوری یقینا اعمال تباه و نابود می شود و از زیان خواهی بود بل فاعبد من الشاکرین بلکه تنها خدا را پرستش کن و از شکر گذاران باش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 و به هر کس پاداش آنچه کرده است به تمام داده شود و او به آنچه انجام میدهند داناتر است. و سيق الذين كفروا إلى جهنم مزورا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين کسانی که از پروردگارشان ترسیدهاند گروه گروه به بهشت برده میشوند تا وقتی به کنار آن رسند و درهایش گشود شود و نگهبانانش به آنان گویند سلام بر شما پاکیزه بوده اید، خوش باشید، پس جاودانه به آن وارد چوید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 به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان مردم به حق داوری می شود و گفته شود حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها. میم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند دانا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر آمرزندی گناه و پذیرنده توبه سخت اقوبت صاحب نعمت است هیچ معبودی به حق جز او نیست بازگشت به سوی اوست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 كذبت قبلهم قوم نوح الأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ و این گونه فرمان پروردگارت بر کسانی که کافر شدند محقق شد که آنها اهل آتشند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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ لِلَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پروردگارا و آنها را به های جاویدان بهشت که به آنها وعده داده ای وارد کن و همچنین هر که صالح باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان به همان بهشت وارد کن همانا تو که پیروزمند و حکیمی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 ان <متحد> الذين كفروا ينادون لما قتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون بيغمان كساني را كافر شدند روز قیامت ندا میزنند که حقا که خشم و دشمنی خداوند نسبت به شما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 پس اینک داوری از آن خداوند بلند مرتبه است او هو الذی یریكم آیاته وینزل لكم من السماء رزقا وما یتذكر الا من ینیب او كسیاست كه آیات خود را به شما نشان میدهد و از آسمان برای شما روزی میفرستد تنها کسی پند میگیرد که به سوی خدا رجوع میکند. فدعا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون. پس خدا را در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیدید بخوانید و اگرچه کافران خوش نداشته باشند. رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم او بالا برندی درجات صاحب عرش که روح را به فرمان خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد میفرستد تا او مردم را از روز ملاقات بترساند یوم من بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار روزی که همه آنان آشکار شوند چیزی از آنها بر خدا پوشیده نخواهد ماند خداوند می‌فرماید امروز فرمان روایی از آن کیست آنگاه خود می‌فرماید از آن خداوند یگانی قهار است اليوم تجزا كل نفس بما كسبت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 و يوم یوم الازفت اذ القلوب لد الحناجر کاظمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیعی یطاع و از روز نزدیک بترسان آنگاه که دلها لبریز از قم به هنجرها رسد برای ستمکاران ندوسی وجود دارد و نه شفیعی که شفاعتش پذیرفته شود. یعلم خائنة و خدا خیانت چشم ها و آنچه را که سینه ها پنهان می دارند میداند. والله بالحق و يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ و خداوند به حق داوری میکند و کسانی را که به جای او میخوانند به هیچ چیز داوری نمی بیگمان بی گمان خداوند همان شنوای بیناست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 الى فرعون وهامان وقارون و قارون فقالوا ساحرون کذاب به فرعون به هامان و قارون پس آنها گفتند او جادو گرید رو گوست جاءهم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 اینی اخاف این یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد و فرآن گفت بگذارید موسا را بکشم و او پروردگارش را برای نجات بخاند بیگمان من میترسم ترسم که دین شما را دگرگون کند یا در این سرزمین فساد انگیزد وقال موسى إنی عذت بربی وربكم من كل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب و موسا گفت من از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمیآورد به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم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 وإن یكو صادقا یصبكم بعض الذی یعدكم إن الله لا یهدی من هو مصرف كذاب و مرد مؤمنی از عال فرعون که ایمانش را پنهان میداشت گفت آیا مردی را میكشید برای آنكه میگوید پروردگار من الله است و همانا دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است و اگر او دروغ گو باشد گناه دروغش برگردن اوست و اگر راستگو گو باشد پارعی از آنچه به شما وعده می به شما خواهد رسید بیگمان خداوند کسی را که اصراف کار و دروغ گوست هدایت نمی کند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 مثل دأب قوم نوحوعاد وثمود والذین من بعدهم وما الله یرید ظلما للعباد مانند حال بشیبه ی نوح و شیوه قوم و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند و خداوند برای بندگانش خاستار ستم نیست ويا قوم انني اخاف عليكم يوم التناد و ای قوم من بیگمان من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا میزنند میترسم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم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 انگونه خداوند کسی را که اسراف کار است گمراه میسازد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار همان کسانی که بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد در آیات خدا مجادل می کنند. این عمل نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده اند سخت ناپسند و موجب خشم است این گونه خداوند بر دل هر متکبر سرکشی مهر می نهد. و قال فرعون یا هامان بنیلی علی ابلغ الاسباب فرعون گفت ای هامان برای من که بلندی بساز باشد که به آن درها و راه ها دست یابم.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 و ما کید فرعون الا فی تباب راهها و درهای آسمانها تا به معبود موسی بنگرم و از او آگاه شوم و هر هرچند من او را دروگ گومی پندارم و این گونه برای فرعون زشتی کردارش در نظرش آراسته شد و از راه حق باز داشته شد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 ای قوم من این زندگی دنیا تنها متاع زود گذر است و همانا آخرت سرای همیشگی است من عمل سیئتا فلا یجزا إلا مثلها و عَمِلَ عمل صالحا من ذکر او انفا و مؤمن فأولائک فأولائک الجنة يرزقون فيها هر کس کار بدی مرتکب شود پس جز به همانند آن کیفر نیابد و هرکس از مرد یازند در حالی که مؤمن است کار شایسته ای انجام دهد پس آنها وارد بهشت به میشوند و در آن روزی بیشمار به آنها داده خواهد شد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 لا جرم آن‌ما تدعونی إليه لیس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَن ان آنچه مرا به سوی آن دعوت می دهید نه حق دعوت در دنیا دارد و نه در آخرت و همانا بازگشت ما به سوی خداست و بیگمان اسراف کارانند که اهل آتشند فست ما اقول لكم و افوض امری الى الله این الله بصیر بالعباد پس بزودی آنچه را به شما میگویم به یاد خواهید آورد من کار خودم را به خداوا گذار می کنم بیگمان خداوند نسبت به بندگان بیناست فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بالفرعون سوء العذاب پس خداوند او را از آسیب آنچه چه که برایش مکر کرده بودند حفظ کرد و بدترین عذاب آل فرعون را در میان گرفت نارو یعرضون علیها و عشیه و تقوم الساعت ادخلو آل فرعون اشد العذاب آن عذاب آتش دوزخ است که هر صبح و شام بر آن عرض می و روزی که قیامت برپا می شود گفته می شود آل فرآن را در سخترین عذاب بارد کنید و اذ یتحاجون فی في النار فیقول الضعفاء للذین استکبرو این و چون در آتش جهنم با هم دیگر مجادله میکنند، پس ناتوانان به کسانی که تکبر ورزیدند میگویند، بیشک ما در دنیا پیروه شما بودیم پس آیا شما امروز میتوانید بخشی از آتش را که نصیب ما شده از ما دور کنید؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد کسانی که تکبر ورزیدند گویند بیگمان ما همگی در آن آتش هستیم همانا خداوند در میان بندگان داوری کرده است وقال الذین في النار لخزنة جهنم ادعو ربكم یخفف عنا يوما من العذاب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 موسیقی یقینا ما پیام خود و کسانی را که ایمان آورده در زندگی دنیا و روزی که گواهان برای گواهی برخیزند یاری می‌کنیم. يوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار روزی كه عذرخواهی ستمکاران سودی ندهد و لعنت خدا برای آنان است و نیز سرای بد برای آنهاست وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَبِالرَّسُولِ مَا بِمُوسَى هِدَايَةٌ أَتَا كَرَدِيم وَبَنِي إِسْرَائِيلَ رَا وَارِثَانِ كِتَابَ قَرار دَادِيم هُدًى وَذِكْرَىٰ لِلْأَلْبَابِ کتابی که برای خردمندان هدایت و پند است. فَاسْتَبِئ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ پس ای پیامبر صبر کن. بی گمان وعده خداوند حق است و برای گناهت آمرزش بخواه. و هر صبح و شام به ستایش پروردگارت تسبیح گوی <تصفيق> این الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغین بالله هو همانا کسانی که در آیات خدا بدون هیچ حجت و دلیلی که برای آنها آمده باشد مجادله می کنند در سینه هایشان جز تکبر نیست که خود به آن نخواهند رسید پس به خدا پناه ببر. بیگمان اوست که شنوای بیناست لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا یعلمون مسلما آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است کن بیشتر مردم نمیدانند.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 با افراد بدکار یکسان نباشند چه اندک پند میپذیرید این الساعت لآتیت لا ریب فیها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون یقینا قیامت آمدنیست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 پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ کذالک یقف كانوا لذین الله کسانی که آیات خدا را انکار می کردند، از حق منحرف می شوند.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 هو الحي لا إله إلا هو فادعووه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين او زنده است هیچ معبودی به حق جز او نیست پس در حالی که دین خود را خالص گردانید او را بخانید. حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. قل اینی إن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البینات من ربی و وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیامبر بگو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 و منکم من یتوفه من قبل ولی تبلغو اجلا مسمم ولعلكم تعقلون او کسیست که شما را از خاک آفرید سپس از نطفه سپس از خونه بسته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 هوالذی یحیی و یمیت فإذا اذا قضا امرا فا انما یقول لهو کن فا یکون او کسیست که زنده می کند و می می راند. پس هنگامی که چیزی را بخواهد تنها به او میگوید گوید موجود شد پس بید رنگ موجود می شود <تصفيق> آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون کسانی که کتاب آسمانی و آنچه آنچ پیامبرانمان را بدان فرستادگان تکذیب کرده پس به زودی خواهند دانست ایدی الاغلال في اعناقهم و السلاسل آنگاه که قلها و زنجیرها در گردنشان خواهد بود و کشیده میشوند شوند فی ثم في النار يسجرون. در آب جوش سپس در آتش جهنم افروخته می شوند. ثم مقیل لهم اینما کنتم آنگاه به آنها گفته می شود کجایند آنچه را شریک قرار میدادید من دون الله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 بما كنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما بی تمرحون این بدان سبب است که به ناحق در زمین شادمان میشدید و به آن که می نازیدید ادخلوا ابواب جهنم فبئس مثول متكبرین. از درهای جهنم بارد شوید جاودانه در آن بمانید پس جایگاه متکبران چه بد است فاصبر این وعد الله حق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 پس در هر صورت به سوی ما باز میشوند و آنجا کیفر میشوند شوند و لقد ارسلنا رسلا من قبل منهم من قصصنا عليك و من, من لم نقصص عليك.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 و تا با سوار شدن بر آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و نیز بر کشتیها سوار می شوید. و, آیاته فأی آیات الله و خداوند آیاتش را به شما نشان می دهد. پس کدام یک از آیات خدا را انکار می کنید؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر و بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون و گفتند دل ما از آنچه ما را به آن دعوت میکنی در پوشش است و در گوش هایمان سنگی نیست و میان ما و تو حجابی است پس تو به شیوه خود عمل کن ما نیز به شیوه خود عمل قل این.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 و آنها که به آخرت ایمان ندارند این الذين وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها پاداش بیپایان است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 او پروردگار جهانیان است وجعل فيها من فيها, وقدر فيها و فيها فیها في فی اربعت ایام سواء ودر و در آن زمین کوها را از فرازش پدید آورد و در آن برکت داد و خوراک و رزق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 بدل خاه آمدین فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفاض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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سَاعِقَتًا مثل سَاعِقَتِ عَادٍ وَثَمُود پس اگر آنها روی گرداندند بگو من شما را از سائق ای همانند سائقی عاد و سمود بین میدهم اَذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا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 اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است آیا ندیدند که خدایی که آنها را آفرید از آنها نیرومندتر است و آنها هموار آیات ما را انکار می کردند فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أيام لنذيقهم عذاب <trouverAMAų> في الحياة الدنيا لا پس ما تند بادی شدید و سرد در روزهایشون برانها فرستادیم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 و نجین الذین آمنوا و کانوا و کسانی را که ایمان آورده بودند و پرهیزگار بودند نجات دادیم و يوم یحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون.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 تا چون همگی به آن آتش دوزخ برسند گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان به آنچه میکردند بر علیه آنها گواهی میدهند قو لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا <تصفيق> أنطقنا الله الذي أنطق كل شیء وهو خلقكم اول مرة وإلیه ترجعون و آنها به پوستهایشان گویند چرا بر علیه ما گواهی دادید در جواب گویند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 تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون از اینکه مبادا گوشهایتان و چشمهایتان و پوستهایتان بر علیه شما گواهی دهند گناهانتان را پنهان نمی کردید ولی شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از آنچه را که انجام می دهید نمی بی ربکم ارداکم فأصبحتم من الخاسرين. این گمان بد شما بود که در باری پروردگارتان داشتید شما را هلاک کرد پس از زیانکاران شدید فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ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 ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين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 ف نذق الذي ن كفروا عذابا شدده ولا نجزهم أسو الذي كان پس یغیناً کسانی را که کافر شدند عذاب سختی می چشانیم و آنها را به خاطر بدترین اعمالیک انجام میدادند کیفر میدهیم. ذالک جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون این آتش کیفر دشمنان خدا است. که آنان در آن سرای جاوید دارند که به سبب آنکه آیات ما را انکار می کردند. و قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعل هما تحت اقدامنا ليكونان من الاسفلين. و کسانی که کافر شدند گفتند پروردگارا آن دو کسان از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان بده که آن دو را زیر پای خود قرار دهیم و لگد کوبشان کنیم تا از پسترین مردم باشند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 و بالجنت اللتی کنتم توعدون بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند فرشتگان برانها نازل میشوند و میگویند گویند نترسید و اندوهگین نباشید و بشارت بعد به بهشتی که شما وعده داده می نحن اولیاؤکم في الحیات الدنیا و فی الاخره و فيها ما تشتهی انفسکم ولكم فيها ما تدعون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 ولا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وهرگز نیکی و بدی یکسان نیست همیشه به نکوترین شیبه پاسخته پس ناگاه میبینی همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوست صمیمی است و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم و اما جز کسانی که شکیبا باشند آن را نپذیرند وجذ دارنده بحری بزرگ از ایمان و اخلاق آن را نپذیرد و انما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم و هرگاه وسوسه ای باز دارند از سوی شیطان تو را بازگرداند پس به خدا پناه ببر یقینا اوست که شنوای داناست او مِم آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است برای خورشید و برای ماه سجده نکنید و برای خدایی که انها را آفریده است سجده کنید، اگر تنها او را میپرستید. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پس اگر کافران تکبر کنند، باکی نیست؟ پس کسانی که نزد پروردگارت هستند شب و روز او را تسبیح میگویند و آنان خسته نمی شوند و من از آیات الارض خاشعه فاذا انزلنا الماء اهتزت وربت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 آن پروردگار توانمندی که زمین را زنده می کند مردگان را نیز زنده خواهد کرد به راستی که او بر هر کاری توانا است این الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي <تصفيق> آیَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِي آمِنَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 هرچه میخواهید عمل کنید که بیتردید، الله به آنچه چه می کنید بیناست. ان كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب آنان که این قرآن را که برای هدایتشان آمده است انکار کرده اند در قیامت عذاب خواهند شد. این کلام الهی کتابی است شک ناپذیر لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزل من حکیم حمید سخن باطل از پیش و پس به آن راه نمیابد و از جانب پروردگار حکیم ستوده نازل شده است ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم ای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 و آنان که ایمان نمی آورند در گوشهایشان هایشان سنگینی و قرآن برایشان نامفهوم است گویی آنان را از راهی دور صدا می زنند ولقد اتینا موسی کتابا فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك به بموسا